به نام خداوند بخشنده بخشایشگر ها هامین سوگند به کتاب مبین و روشنگر که ما آن را قرآنی فصیح و عربی قرار دادیم شاید شما آن را درک کنید و آن در ام کتاب لوه محفوظ نزد ما بلند پایه و ازتار است آیا این ذکر قرآن را از شما بازگیریم به خاطر اینکه قومی اصراف کارید؟ چه بسیار پیامبرانی که برای هدایت در میان اقوام پیشین فرستادیم ولی هیچ پیامبری به سوی آنها نمیآمد آمد مگر اینکه او را استهزام کردند ولی ما کسانی را که نیرومندتر از آنها بودند حلاک کردیم و داستان پیشینیان گذشت هرگاه از آنان بپرسی چه کسی آسمانها و زمین را آفریده است مسلما می گویند خداوند قادر و دانه آنها را آفریده است همان کسی که زمین را محل آرامش شما قرار داد و برای شما در آن راه‌های آفریده باشد که هدایت شوید و به مقصد برسید همان کسی که از آسمان آبی فرستاد به مقدار معین و به وسیله آن سرزمین مرده را حیات بخشیدیم همین گونه در قیامت از قبرها شما را خارج می سازند و همان کسی که همه زوجها را آفرید و برای شما از کشتی و چهار پایان قرار داد که آن سوار می شن. تا بر پشت آنها به خوبی قرار گیرید سپس هنگامی که بر آنها سوار شدید نعمت پروردگارتان را متذکر شدید و بگویید پاک و منزه هست کسی که این را مسخر ما ساخت وگرنه گرنه ما توانایی تسخیر آن را نداشتیم و ما به سوی پروردگارمان باز می کردیم. آنها برای خداوند از میان بندگانش جزئی قرار دادند و ملائکه را دختران خدا خواندند انسان کفران کننده آشکاری است آیا از میان مخلوقاتش دختران را برای خود انتخاب کرده و پسران را برای شما برگزیده است در حالی که هرگاه یکی از آنها را به همان چیزی که برای خداوند رحمان شوی قرار داده به تولد دختر بشارت دهند، صورتش از فرت ناراحتی سیاه می شود و خشمگین می جردد. آیا کسی را که در لابلای زینتها ها پربرش می و به هنگام جدال قادر به تبیین مقصود خود نیست، فرزند خدا می آنها فرشتگان را که بندگان خداوند رحمانند مؤنث پنداشتند آیا شاهد آفرینش آنها بودند گواهی آنان نوشته می‌شود و از آن بازخواست خواهند شد آنان گفتند اگر خداوند رحمان میخواست ما آنها را پرستش نمی‌کردیم ولی به این امر هیچ گونه علم و یقین ندارند و جز دروغ چیزی نمی‌گوندند یا اینکه ما چتابی پیش از این به آنان داده ایم و آنها به آن تمسط می جویند؟ بلکه آنها می گویند ما نیاکان خود را برای این یافتیم و ما نیز به پیروی آنان هدایت یافتیم. و این گونه در هیچ شهر و دیاری پیش از تو پیامبر انذار کنندهی نفرستادیم. مگر اینکه ثروتمندان مست و مقرور آن گفتند ما پدران خود را برای این یافتیم. و به آثار آنان اقتدا میکنید پیامبرشان گفت آیا اگر من آیینی هدایت بخشتر از آنچه پدرانتان را بران یافتید آورده باشم باز هم انکار میکنید گفتند آری ما به آنچه شما به آن پرستاده شده اید کافری. به همین جهت از آنها انتقام گرفتیم بنگر پایان کار تکذیب کنندگان چگونه بود و به خاطر بیاورد هنگامی را که ابراهیم به پدرش عمویش آذر و قومش گفت من از آنچه شما میپرستید بیزارم. مگر آن کسی که مرا آفریده که او هدایتم خواهد کرد. او کلمه توهید را کلمه پایندهی در نسلهای بعد از خود قرار داد. شاید به سوی خدا بازگردد. ولی من این گروه و پدرانشان را از مواهب دنیا بهرمند ساختم. تا حق و فرستادهی آشکار الهی به سراغشان آمد. هنگامی که حق به سراغشان آمد، گفتند این سهر است و ما نسبت به آن کافریم و گفتند چرا این قرآن بر مرد بزرگ و ثروتمندی از این دو شهر مکه و طائف نازل نشده است؟ آیا آنان رحمت پروردگارت را تقسیم میکنند؟ ما معیشت آنها را در حیات دنیا در میانشان تقسیم کردیم و بعضی را بر بعضی برتری دادیم تا یکدیگر را مسخر کرده و با هم تعاون نمایند. و رحمت پروردگار از تمام آن چه جماوری میکنند بهتر است. اگر تمکن کفار از مواهب مادی سبب نمیشد که همه مردم امت واحد گمراه شوند ما برای کسانی که به خداوند رحمان کافر میشدند خانه‌هایی قرار می‌دادیم با هایی از نقره و نردبان‌هایی که از آن بالا روند و برای خانه‌هایشان درها و تخت‌های زیبا و نقره ای قرار می‌دادیم که بر آن تکیه کنند و انواع زیورها ولی تمام اینها بهره زندگی دنیاست و آخرت نزد پروردگارت از آن پرهیزگاران است و هر کس از یاد خدا روی گردان شود، شیطان را به سراغ او میفرستیم پس همواره قریم اوست. و آنها شیاطین این گروه را از راه خدا باز می دارند. در حالی که گمان می کنند، یا یافتگان حقیقی آنها هستند. تا زمانی که در قیامت نزد ما حاضر شود، می‌گوید ای کاش میان من و تو فاصله مشرق و مغرب بود، چه بد هم نشینی بودی. ولی به آنها می گوییم هرگز این گفتگوها امروز به حال شما سودی ندارد. چرا که ظلم کردید و همه در عذاب مشترکید. ای پیامبر، آیا تو می توانی سخن خود را به گوش کران برسانی؟ یا کوران و کسانی را که در گمراهی آشکاری هستند هدایت کنی؟ و هرگاه تو را از میان آنها ببریم حتما از آنان انتقام خواهیم گرفت. یا اگر زنده بمانی و آنچه را از عذاب به آنان بعد داده این به تو نشان دهیم باز ما برانها مسلطیم آنچه را بر تو شده محکم بگیر که تو بر سرات مستقیم و این مایه یادآوری و عظمت تو و قوم توست و به زودی سؤال خواهید شد. از رسولانی که پیش از تو فرستادیم بپرس آیا غیر از خداوند رحمانی. معبودانی برای پرستش قرار دادیم ما موسی را با آیات خود به سوی فرعون و درباریان او فرستادیم موسی به آنها گفت من فرستاده پروردگار جهانیانم ولی هنگامی که او آیات ما را برای آنها آورد به آن میخنیدند ما هیچ آیه و معجزهی به آنان نشان نمیدادیم مگر این که از دیگری بزرگتر و مهمتر بود و آنها را به انواع عذاب گرفتار کردیم، شاید کردند. وقتی گرفتار بلا می شدند، می گفتند، ای صاحب، پروردگارت را به عهدی که با تو کرده بخانیم، تا ما را از این بلا برهاند که ما هدایت خواهیم را و ایمان میانیم. اما هنگامی که عذاب را از آنها برطرف می پیمان خود را می شکستد. فرعون در میان قوم خود نداداد و گفت، ای قوم من آیا حکومت مصر از آن من است و این نهرها تحت فرمان من جریان ندارد آیا بینید؟ مگر نه این است که من از این مردی که از خانواده و طبقه پستی است و هرگز نمیتواند فصیح سخن بگوید بحترم اگر راست میگوید چرا دستبندهای طلا به او داده نشده یا اینکه چرا فرشتگان دوشا دوش او نیامدهاند تا گفتارش را تایید کند. فرعون قوم خود را سبک شمرد در نتیجه از او اطاعت کردند، آنان قومی فاسق بودند. اما هنگامی که ما را به خشم آوردند، از آنها انتقام گرفتیم و همه را قرخ کردیم و آنها را پیشگامان در عذاب و عبرتی برای دیگران قرار دادیم و هنگامی که درباره فرزند مریم مسلی زده شد، ناگهان قوم تو به خاطر آن داد و فریاد را انداختند و گفتند آیا خدایان ما بهترند یا او مسیح؟ اگر معبودان ما در دوزخند مسیح نیز در دوزخ است چرا که معبود واقع شده ولی آنها این مثل را جز از طریق جدال و لجاج برای تو نزدند آنان گروهی چین توز و پرخاشگرند مسیح فقط بنده ای بود ما نعمت به او بخشیدیم و او را نمونه و الگویی برای بنی اسرائیل قرار دادیم. و هرگاه بخواهیم به جای شما در زمین فرشتگانی قرار می‌دهیم که جانشین شما گردند و او مسیح سبب آگاهی بر روز قیامت است زیرا نزول عیسی گواه نزدیکی رستاخیز است هرگز در آن تردید نکنید و از من پیروی کنید که این راه مستقیم است و شیطان شما را از راه خدا باز ندارد که او دشمن آشکار شماست و هنگامی که عیسی دلایل روشن برای آنها آورد گفت من برای شما حکمت آوردم و آمدم تا برخی از آن چرا که در آن اختلاف دارید روشن کنم پس تقوای الهی پیش کنید و از من اطاعت نمایید خداوند پروردگار من و پروردگار شماست تنها او را پرستش کنید که راه راست همین است ولی گروه از میان آنها درباره مسیح اختلاف کردند و بعضی او را خدا پنداشتند وای بر کسانی که ستم کردند از عذاب روزی دردنار آیا جز این انتظار دارند که قیامت ناگهان به سرابشان آید در حالی که نمی دوستان در آن روز دشمن یکدیگرند مگر پرهیزگاران ای بندگان من امروز نه ترسی بر شماست و نه اندوهی میشوید. همان کسانی که به آیات ما ایمان آوردند و تسلیم بودند به آنها خطاب میشود شما و همسرانتان در نهایت شادمانی وارد بهشت شوید این در حالی است که ضرب‌های قضا و جامهای طلایی شراب تهور را گرداگرد آنها می‌گردانند و در آن بهشت آنچه دلها میخواهد و چشمها از آن لذت میبرد موجود است و شما همیشه در آن خواهید ماند این بهشتی است که شما وارث آن میشوید به خاطر اعمالی که انجام می‌دهید و در آن برای شما نیوه های فراوان است که از آن میخورید، ولی مجرمان در عذاب دوزخ جاودانه ماند. هرگز عذاب آنان تخفیف نمییابد. و در آنجا از همه چیز معیوس هند. ما به آنها ستم نکردیم، آنان خود ستم کار میتند، آنها فریاد می‌کشند، ای مالی که دوزخ، ای کاش پروردگارت ما را بمیراند تا آسوده شویم. میگوید شما در اینجا ماندنی هستید، ما حق را برای شما آوردیم، ولی بیشتر شما از حق کراحت داشتید، بلکه آنها تصمیم محکم بر توطعه گرفتند ما نیز اراده محکمی در آنها داریم آیا آنان میپندارند که ما اسرار نهانی و سخنان درگوشی آنان را نمی‌شنویم؟ آری رسولان و فرشتگان ما نزد آنها هستند و مینویسند بگو اگر برای خداوند فرزندی بود من نخستین پرستنده او بودم منظه از پروردگار آسمانها و زمین پروردگار عرش از توصیفی که آنها می آنان را به حال خود واگذار تا در باطل قوتور باشند و سرگرم بازی شوند تا روزی را که به آنها وعده داده شده است ملاقات کنند و نتیجه کار خود را ببینند. او کسی است که در آسمان معبود است و در زمین معبود و او حکیم و علیم است. پر برکت و پایدار از کسی که حکومت آسمانها و زمین و آنچه در میان آن است از آن اوست، و آگاهی از قیام قیامت نزد اوست و به سوی او بازگردانده می کسانی را که غیر از او می قادر بر شفاعت نیستند، مگر آنها که شهادت به حق دادند و به خوبی آگاهند، و اگر از آنها بپرسی چه کسی آنان را آفریده قطعا میگویند خدا، پس چگونه از عبادت او منحرف می شود؟ آنها چگونه از شکایت پیامبر که میگوید پروردگارا اینها قومی هستند که ایمان نمیآورند غافل میشوند پس اکنون که چنین است از آنان روی برگردان و بگو سلام بر شما اما به زودی خواهند